بسم الله الرحمن الرحیم سخنرانی مرحوم آیت الله حاج میرزا علی فلسفی موضوع سخنرانی امامت جلسه دوم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین صلی الله علی سیدنا و نبینا و شفيعنا بدر القاسم محمد و الله علی و الله علی اعدائهم از ما ان الیهم مصیر قوم انسان دو قسمت می شود یک قسمتش فهم امام علیه السلام و یک قسمتش متعلق به سادات هست که در آیه شریفه قرآن اَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلْرَسُولِ ولی ولی و وَلْيَتَامَ وَلْمَسَارْكِينَ وَبْنِسَبِیلِ تو قرآن شیش سهم جرده از خمس را یک قسمتش سهم خدای فعالا یا قسمتش سهم رسول هست یک قسمتش سهم زبلغربا تو روایات ما تو روایات شیعه داره سهم خدا به رسول میرسه و سهم رسول هم مال زبلغربا و سهم زبلغربا هم که مال خودشونه پس سه سه سه سهم مال امام علیه السلام میشود سه سهم دیگرش که یعنی نصف خمس باشه مربوط به یتاما بود مساکین و ابن سبیل که بچه های یتین ولی سید و همچنین ابن سبیلی که از خانه به وطنش دور مونده و در سفر خرجیش تمام شده و سریردان مونده از از بابت سهم سادات اگه سید باشه بهش میدن به مقداری که برگرده به وطنش و مخصوم و که سید باشه از سهم سادات بهش میدن پس مجموعاً خمس رو میتوانیم بگیم دو قسمت میشه یه قسمتی سهم امام علیه السلامه و یه قسمت سهم ساداته که به فقراء سادات و ایتام و ابن صبیلی میرسه البته هر کدام از اینها یه خصوصیات و شرایطی دارد که تدریجان عرض میکنه اما اون سه قسمتی که مربوط به فقرها و ایتام و ابن سبیل است باید سید باشند به هر فقیری خمس نمیشه داد یه شرطش این است که باید سید باشند و همچنین یتیمی که بهش میخوام خمس بدیم باید سید باشد و همچنین ابن سبیلی که میخوام از خمس بهش بدیم باید سید باشند سید کی؟ سید از اون کسی است که از طرف کدر نسبش برسه به هاشم جد اعلای پیغمبر نسبش برسه به هاشم جد اعلای پیغمبر پیغمبر صلی الله پدرش عبدالله بود عبدالله پسر عبدالمطلب بود عبدالمطلب پسر خاشم بود پس جد پیغمبر عبدالمطلب جد اعلاش هاشم هر کسی که نصبش به حاشم درسته ای سیده و بهش خمس می شود دا حتما لازم نیست از اولاد پیغمبر باشه از اولاد پیغمبرم که نبود نبود یک کسی از اولاد پیغمبره مثل بچه که از اینه غیر از امیر المؤمنی. از اولاد اینه هستن خب اینا قهران اولاد زهرا سلاموگاه علیه ها و قهران اولاد پیغمبرن ولی امیرالمومنین سلام الله علیه بچه‌ام بودم داشت شاید توی روایات توی کلمات چهار تا یا 5 تا برادر امی... امام حسین در کربلا شهید شده اینا برادرای پدری بودن برادرای مادری که نبودن حضرت زهرو دو تا پسر داشت امام حسن و امام حسین اول سلام الله علیه برادر مادری امام حسین بود سه تا برادر دیگه یا چهار تا برادر دیگه هم در کربالا شهید شدن اینا همه بچه های پدری بودن یعنی برادر های پدری بودن با امام حسین بچه های امیر الممنین بودن اما بچه های پیغمبر نبودن خب اگر کسی از الان یک کسی پیدا بشه از بچه های از عوالفه میرسه نسبش به عوالفه این خونس بهش میرن ولی از بچه های پیغمبر نیست بچه های نه بالاتر از و خیلی طولانیتر از این ارچه این باید نصبش. برسه به حاشم حاشم پسرش. پسر حاشم که او را عبد, المطلب. عبد المطلب خودش دهت را پسر داشت که یکیش عبدالله یکیش عبدالله یکیش که پدر عمیر یکیش عقیله که برادر امرومنینه پدر مسلم مسلم رضا عقیل عقیلم که از, از بچه های عبد المطلعه برادر امرومنینه بله عقیل بچه عبی طالبه بچه عبی طالب من است اشتباه کردم از می شاد عبدالمطلب یکیش عبیله هفه عبیله پیغمبر بود عباس که این بن العباس باشه عباس امروی پیغمبر بود عرض می به اینکه و همچنین عرض می شود به این که من که خیلی بچه های عزیز عبدالمطلبه الان جال هم نیست الان کسیم الاغا حمزه عموی پیغمبر بود اینا بچه های عبدالمطلبه اگه الان از بن العباس کسی پیدا بشه خمس بش میشه می شه کسی پیدا بشه بچه حارون رشید باشه بچه معموم باشه که از بلیل عباس که نسبشون میرسه به عباس اموی پیغمبر یکی پیدا بشه بچه عدیل حب باشه عدیل حب خود جزو کفاره ولی نسبش میرسه به حاشم بنابراین سادا سید به کسی میگن که نسبش به حاشم برسه حالا میخواد از اولاد پیغمبر باشه میخواد از اولاد امیول مومنین باشه میخواد از اولاد عقیل باشه حالا از بچه های مسلم یا از و عقیل بچه های دیگه داشته باشه نسبش میرسه به عقیل عقیل برادر امیر المومنینه و قهران پسر عبی و نتیجه تن از ازمی به اینکه که عبدالمطلب میشه و میرسه باز به هاشه کل حال دائره سید زیاد وسیع اختصاص به بچه های پیغمبر نداره خود به هر سیدی نیشه داد ولی البته باید ثابت بشه ها این کسی بیاد بگید من از بچه های عوی لحب هم که ازش قبول کرد و ثابت کنه که این مطلب رو که از بچه های عوی لحبه اگه ثابت شد بهش خنس میشه داد بنابراین خنس رو به سید باید داد و سید عبارت از اون است که نصدش به هاشم برسه به هاشم جد اعلایی پیغمت و علی و علی هر کی نسبش به هاشم برسه میخواد از بچه های عبیل حب باشه میخواد از بچه های عباس باشه حمزه باشه و غیر داله که بنده بلد نیستم ماشون رو از هر از اینا یا از بچه های امیر المومنی از زهره سلام ها باشه یا از بچه های عقیل باشه و امثال داله اینا همه خمس بره ولی باید از طرف پدر متصل باشند از مادر متصل بودن کافی نیست ای کسی مادرش سیده فایده نداره خب بهش نمیرسه مادرش سیده و از طرف مادر متصل است به پیغمبر یا به امیرالمومنین یا به کسی دیگه مادر سید بودن فایده نداره این چه سر نمیشه به خود مادرش میشه قمستا اما به این کسر نمیشه خونستاد بگه من مادرم سیده مادر فایده نداره باید اتصال از طرف پدر داشته باشه تهمین طبقات و نه فقط طبق خودش یعنی این پدرش باید سید باشه و پدر پدرش و پدر پدرش همینطور از تمت پدر متصل باشند و سالات باشند اما اگر از این وسط یکی از طرف مادر به خود متصل باشه به هم نخور کار اتصال از طرف مادر فایده نداره و باید از طرف پدر متصل باشد و سید باشد پس اینو بهش میگیم سید سید ابارت از کی؟ ایست؟ ابارت از کسیست که نسلش متصل باشد به هاشه عرض میشود بین که هر که اومد با سیده میشه بهش خونستا و باید دفعا میسیده هر آقای ما رو بنده سیده و تو مسئله آگاهی فقرایی پیدا میشن یشال سبز ندفته گرزنش میگه من سیدا خب از کجا ببرم سیده ولی میتونیم خودش بهش بدیم نه و به فام سیده یا باید دو تا شاهد عادل شهادت بدن که ایش سیده یا باید معروف و مشهور باشه بین مردم و مردمی رو میشناسن اصلا جدی که ایش سیده یا تو شهرشون انقدر معروف و مشهور باشه به سیادت که مردمی رو به سیدی ولی و انسان یقینم پیدا نکنه ولی معروف و مشهور به سیادت باشه تو شهرش، تو آقادیش، تو دهش هر جا هست معروف باشه به سیادت در این صورت میشه به اشتاد هر که اومد ادعا کرد که من سیدم که نمیشه بهش خمس دار این خمس رو باید به سید بدیم ولی بدانیم که سیده یا یقین داشته باشین یا دو تا شاهد عادل شهادت بدن به سیادتش یا معروف و مشهور باشه به جوری که برای ما اطمینان حاصل بشه که سیده یا تو شهر و بلده خودش معروف به سیادتی که مردم ابداً جد زندگی به حسابش در این صورت میشه بهش خنث داد و اما در غیر این صورت هر کی از راه برسه بگه بنده از 사اداتم خنث بهش نمیشه. این هم یه مسئله و شرط همه این سیدا که خمس بهش باید داد باید فقیر باشه یه وقتی یک کسی اومد از من پرسید گفت ما شنیدیم که نودون خونه سید اگه تلا باشه میشه خمس بهش داد نودون خونه اگه تلا باشه میشه خمس بهش داد که من مسئله ای بلد نیستم در همه سیدا این است که فقیر باشد. وقت فقیر عبارت از کسی که خرجی سالش رو نداشته باشه. کار نه از کار افتاده یا کار میکنه ولی به قدر خرجش نمیتونه در بیاره. کار ضعیف مختصری داره. روز 50 تومن، 100 تومان 100 تومان کار میکنه ولی ایالوار روز 200 تومان خرجشه، روز 150 تومان خرجشه. این فقیر است، اینو میشه بهش خمس و اما کسی که پول داره یا کسی که میخواد همجوری را بره به عنوان سیدی و سیدی بکنم خلاصه اون اونجا میخواد را بره هیچ کار نکنه و ول بگرده و بخواد خمس بگیره نبعی خمس نمیشه داره کسی که از کار افتاده هست. یا کار میکنه و به قدره خرجش نمیتونه در بیاره اون کسبش رو از سحن سادات میشه دادهش و اما کسی که میخواد همون رو بیکار بگرده و به عنوانی که من سه گدم باید بمنده خمس بدین با حال که قدرت بر کار کردن و توان کار کردن رو داره ولی میشه خمس داد و خلاصه خمس بیکار پرور نیست بیکار درست کنه دو آلم بلکه به خصوص این تو هایی رو داره که در مورد زکات یه شخص فقیری که غیر سیده سید نیست نیش انسان حتی یه دفعه بیش از خرج هم بهش بده یه شخص عامیست که سید نیست فقیره معطله و از کار افتاده است به همین جور که کردیم ولی اینو رو میتوانم مثلا خرج ساله ای در ازادت یه دفعه آدم پوزه ازادت ها بهش بده همون یه دسته 15 ازارتومان بشه بود اما اول 10 ازارتومان داد دیگه نمیتونه 15 ازارتومان دیگه شو بهش بده ها. همون اول میتونه 15 ازارتومان بهش بده که به غیر سید میگن میشه بیش از خرج سال رو داد ولی به سید گفتن بیش از خرج سال رو نباید بده احتیاط واجب این از شاید فتوا بردیابدن که بیش از خرج سالش بهش نده پس بنابراین به سید میشه خمس داد ولی سیدی که فقیر باشه و خرجش رو نتونه اداره کنه و حالا هم که میخواید بدی بیشت خرج سالش نده اگه کار نمیتونه بکنه خرج سالش رو میتونی بدی اگه کار نمیتونه بکنه کسرش رو باید بهش بدی از خرج سالش نده پس این باید این کسی رو که بهش خمس دیم فقیر باشه و سیدم باشه البته در ابن سبیل کسی که آمده توی شهری غریب و مسافر و معتل مونده این لازم نیست که در وطنش فقیر باشه نه ممکنه پول دار باشه حالا آمده اینجا پولاشو زدن و الان سرگردان مونده این به مقداری که برگرده به وطنش میشه خونس به اشتاب گرد چه وطنش در وطنش پول دارم هم ولی در اینجا الان دستسیه به جایی نداره میشه بهش خمس داد از همین عرض میشه همینی که الان ابن سبیل است و در وطنش چیز دارم باشه ولی در اینجا معطل و سرگردانه میشه بابت خمس بهش داد در صورتی که نتواند و چیزی نداشته باشه چی اینجا پول تقییه کنه اگه چیزی داره که اینجا بفروشه و بتونه پول تقییه کنه نفرمان به این هم خمس نده. اگه چیزی نداره که اینجا بفروشه مثلا و باید خواهد کند پولی را که برگرده یا کسی را نداره که ازش قرض کنه و بره در وطنش بده در این صورت خمس دادن به اشکال نداشه و اما فقرش سید بودنشو که گفتیم باید بدونیم سیده یا باید دو نفر شاهد عادل شهادت بدن و اما فقیر بودنش از شد اونم اینن همون جور نوعا فقه ها شرط میکنن که باید بدونی فقیره یا شهادت عادل شهادت بده و خلاصه تحقیق نکرده کسی که میگی من فقیرم خود نده تحقیق نکرده نده یا برو تحقیق کن و از وقتش متلعه بشو و یا این که دوتا شاهد عادل شهادت بدن که این فقیره و امثال این داله و اما در ذهنم که آقای خویی میفرماید هم در اینجا هم در زکات اگر یک کسی است که علم به کذبش نداریم و ظاهر حالش اینجوریه که شاید فقیر باشه همین گفته خودش رو میتوانیم بپذیریم ایشون در خصوص فقر اینو میگم سیادت همونه ها سیادت از تحقیق کرد و اما فقرش ایشون شاید میفرماید که بعید نیست که همین اکتفای به قول خودش بکنیم مگر داشته باشیم یا اطمینان باشیم که دروغ میگه. اگه اطمینان داریم دروغه که نمیتونیم بدیم و اما اگر اطمینان نداریم مظاهر حالش آثار فقر ازش پیداست یعنی میبینیم سختی میکشه و زندگیش مثلا جوریست گفته خودش رو میتوانیم اتم... اعتماد کنیم و به گفته خودش عمل کنیم این راجع به اینجا و اما زن سیدی که شوهرش غیر سیده اگه شوهرش قرض و قوله و نسیه و حضوری هست خرج زنو میده که زنیش از نظر زندگیش معطل و سریعزان نیست نه به این زن خمس نمیرسه شو خرجش داره حالا شوهره به هر زحمتی که هست بلو قرض میکنه بلو نکیه میاره بلو چی میکنه ولی خرج خونش رو اداره میکنه اگر خرج خونهشو رو اداره میکنه به این زن خمس نمیرسه و اما اگر مردیست که نمی تونه خرج خونه‌ش رو اداره کنه نون نداره تو خونهش اش کنم بده به زنش بخوره یا نه آدم پولدار گم مثلا اون آدمی بدیه این زنیکه رو بیچاره سرگردون گذاشته و از خرجش رو نمیده در این صورت میشه به چنین زنی خونسدا البته حالا که این مساله رو فرمودی میکنه منم عرض کنم گاهی زنیست که شوهرش خرج خود خرج, خرج, خرج این زن رو میده ولی این زن یه خرجای داره که بر شوهر واجبو هم فرض بفرمایید یه زن که شوهر قبلاً داشته و از اون شوهرش یکی دو تا بچه داره خب برای این شوهر تازه واجب نیست خرج اون بچه‌ها رو بده که حالا ما میتوانیم به این زن خمس بدیم برای اینکه این, این بچه‌ها رو اداره کنیم ما نه اینا خلاص اون خرج هایی که بر شوهر واجب است و میده اون خرج ها رو برای اونا دیگه نمیشه خمس داد اگر اونا رو نمیده یا این زن خرج‌هایی داره که بر شوهر واجب نیست دادنش این صورت میشه که خمس بدین و این خرج‌هایی را که بر عهده این زن است، که داره کنه خرج خودش چرا باید دوازه امامی باشه یا علیه باشه همه شرطشی یه دفعه نمیخونم بگیم که اللهم نخلی نخلی